دوش بیماری چشم تو ببردست دستم لیکن از لطف لبت صورت جان می بستم عشق من با خط مشکین تو امروزی نیست دیرگاه است که از این جام حلالی مستم از ثبات خودم این نکته خوش آمد که به جور در سر کوی تو از پای طلب ننشستم عافیت چش مدار از من میخانه نشین که دم از خدمت رندان زده‌ام تا هستم در راه عشق از آن سوی فنا صد خطر است تا نگوی که چو عمرم به سلامت رستم بعد از اینم چه غم از تیر کجنداز حسود چون به محبوب کمان ابروی خود پیوستم بوسه بر درج عقیق تو حلال است مرا که به افسوس و جفا مهر وفا نشکستم سنمی لشکریم غارت دل کرد و برفت آه اگر عاطفت شاه نگیرد دستم رتبت دانش حافظ به فلک بر شده و کرد غمخواری شمشاد بلندت قستم